داستان سفید. در نوشته یک کتاب نام این داستان به زبان ژاپنی به اسم کلنگ سفید آمده اما داستان در مورد یک پرنده سفید هست به اسم دورنا. روزگاری زن و شوهری بودند که تنها یک پسر به نام کوتارو داشتند. کوتارو در مزرعه کوچکشون کار میکرد و وقتی کارش توی مزرعه تموم میشد، به جنگل میرفت و هیزم جمع‌آوری میکرد و میبرد بازار میفروخت. از این کار پول زیادی به دست نمی‌آورد. اما خانواده اون خیلی فقیر بود. هر سکه کوچیکی براشون غنیمت بود. کوتارو جوونی پرکار و فرزندی فرمانبردار بود. با این همه پدر و مادرشونا سرزنش می‌کردند. چون اون جوونی بسیار نیکوکار بود و اغلب وقتی از شهر به دهگده برمیگشت چند سکه مسیر رو که با فروش هیزوما به دست آورده بود با گدایی که سر راهش میدی می میکرد اما چیزی که پدر رو بیشتر از پیش ناراحت میکرد این بود که هر وقت همراه پسرش به شکار میرفت نمیتونست شکار بزنه و با اون سفره کوچیکش رو کمی رونق بده. هر وقت که شکاری پیدا می شد، کوتارو یا سنگی می پروند، یا فریاد میزد و شکار رو از خطر آگاه می کرد. به شکار فرصت میداد که همون موقع از اونجا فرار کنه. پدر و مادر پیر کوتارو اغلب با هم و گاهی هم پیش پسرشون می گفتن که اگه، درباره پسرمون درست قضاوت کنیم باید بگیم که اون جوونی پرکار و فعاله اما از هوش و زیرکی برخوردار نیست تا پایان زندگیش مجبوره که توی مزرعه و جنگل کار کنه جون بکنه چون هیچی نمیدونه نمیدونه که دنیا روی چی میگرده یه روزی از روزا رو به بازار شهر رفت و تو راه بازگشت به دهگده باید از جنگل بگذره. اون شاد و خوشحال راه میرفت و از آواز پرنده ها لذت می برد که ناگهان خشخش عجیبی شنید و سعی کرد که بدون صدا از کجاست چون بالای سرش را نگاه کرد دورنای سفیدی رو دید که در بین شاخه های درخت بزرگی گیر کرده. در کوشش و تقلا میکنه که خودش آزاد کنه اما موفق نمیشه پرنده اونقدر بال زده و تقلا کرده بود که نیروش را از دست داده بود و به دشواری بالاش رو تکون میداد کوتا رو بیدرنگ از درخت بالا رفت پرنده از دیدنش از ترس به لرزه افتاد و چشمش از هدقه بیرون اومد کوتا رو با دقت و با احتیاط زیاد دورنا رو از بین شاخه‌ها بیرون آورد و دید که پرنده بیچاره زخمیه. تیری بلند بر بالش نشسته. کوتا رو برای پرنده رو نوازش کرد. گفت: مرغ بیچاره چقدرم ترسیدی. شاید شکارچی تو رو به تیر زده و تو بالای این درخ افتادی و در بین شاخه های این گرفتار شدی اما نگران نباش زخمت خیلی عمیق نیست زود جوش میخوره تیر تیرو به آهستگی و آرومی بیرون کشید و بال پرنده رو تمیز کرد و بعد اون رو به جای امنی تو امبوه جای جنگل برد و اونو دلداری داد و گفت تا چند روز دیگه نیروی از دست رفته و دوباره به دست میاری و بعد خودش به خونه برگشت توی اون روزها چون کاری توی مزرعه نبود کوتارو به جنگل میرفت و زودتر از غروب آفتاب به خونه برنمیگشت. روزی کوتارو از خونه بیرون رفته بود دختر جوان زیبایی پیش پدر مادرش اومد دختر بخچه بزرگی زیر بغلش داشت که نشون میداد از راه دور اومده اون به دیوار خونه تکیه داد و با صدای بسیار لطیف و دلشین پرسید آقای کوتارا خونه هستند؟ در بیرون اومد چون دید دختری چنان زیبا میخواد پسرش رو ببینه خیلی متعجب شد به دختر جوون گفت فرزندم بیا تو پسرم خونه نیست اون جنگل رفته سر شب برمیگرده خونه اگه میخوای اونو ببینی بیا توی خونه بشین تا بیا دختر جوون با ادب زیاد این دعوت رو رد کرد و در آستانه در نشست و منتظر شد تا کوتا را بیاد پیرمرد و پیرزن چند بار از جلو اون گذشتند و به دقت براندازش کردند سعی کردند که سر صحبت رو با اون باز کنن و بفهمن با پسرشون چیکار داره اما دختر جوون تنها به همین اکتفا کرد که به ادب لبخندی به اونها زد و در جوابشون گفت که منتظر اومدن آقای کوتارو. ملخره روز به پایان رسید و شامگاهان کوتارو که بار سنگینی از هیزون به دوش داشت به خونه اومد. نخت در جوون از جاش بلند شد و در برابر کوتارو سرخم کرد و با صدای شیرین و دلنشینی ازش پرسید آقای کوتارو شما هستید؟ کوتارو که تعجب کرده بود جواب داد بله خودمم و از دختر جوان پرسید که چه کاری با اون داره دختر به توازه لبخندی زد و در جوابش گفت من از صبح منتظر شما هستم کوتارو که از این دیدار غیرمنتظره در حیرت و شگفتی بود گفت پس بیای تو، حتما خیلی خسته ای. اون دختر جوان رو با خود به خونه برد و از اون دعوت کرد که تو خوردن شام مختصرشون با اونها شرکت بکنه. این بار دختر جواب رد نداد. کفشای سندلشو بیرون آورد و وارد خونه شد و با دو پیر و پسرشون سر سفره شام نشست. بعد از خوردن شام دختر جوان دوباره لبخندی به روی کوتارو زد و چشماشو از خجالت پایین انداخت و ازش پرسید که حاضری که منو به همسری خودت بپذیری؟ رو از حیرت سر جاش کش زد. چطور ممکن بود دختری به این زیبایی زن روستایی هیزم شکن فقیری بشه؟ پدر و مادر اونم که کمتر از پسرشون شگفت زده نشده بودند گفتند که پسرشون پول نداره که بتونه با دختری به زیبایی اون ازدواج کنه. بعد برای دختر تعریف کردند که اونها مردمانی بی و فقیرن و کوتارو نمیتونه به این زودی یا به فکر زنگ گرفتن باشه. نختر جوان در پاسخ اونها گفت برای خوشبخت بودن لازم نیستادم حتما سروت من باشه کافیه که دل پاک و مهربون داشته باشه که کوتارو همچین مردیه من به شما قول میدم که از پذیرفتن من به خونه و خونوادتون هیچ وقت پشیمون نشین من خیلی کارا میتونم بکنم چهار نفری زندگی راحت تری داریم مادر پیر کوتارو فهمید که عروس نه تنها که مقرور نیست؟ بلکه با این زیبایی هم که داره از خود راضی و خودپسندم نیست بلکه دختری مهربون و پرکاره خیلی خوشحال و شاد شد که کمک کاری براش پیدا کرده دیگه پدر و مادر کوتارو اعتراض نکردن. کوتارو از شادی در پوست خودش نمی گنجید و نمی چی چیکار کنه کی میتونست باور کنه که اون روزی زنی به اون زیبایی داشته باشه اما اون هنوز نام دخترم نمیدونست دختر در پاسخ اون که نامش رو پرسیده بود گفت منو کوماچی صدا کنید دختر یه مقداری پول از بخچش بیرون آورد و به کوتارو داد و اونو به شهر فرستاد که نقل و نبات و چای و ساکه و چیزهای دیگه که برای جشن عروسی لازمه بخره و با خودش بیاره جشن عروسی واقعا عالی بود. پدر و مادر کوتارو هیچ وقت این همه نخورده بودند اونها مرتب تعریف و تمجید میکردن از عروسشو. بعد از عروسی هم کوتارو مثل گذشته برای جمع کردن هیزون به جنگل رفت. اما سعی می کرد هر زودتر به خونه برگرده. هر روز بعد از تموم شدن کارش با بی به دیدن زنش میرفت مادرش هم خیلی خوشحال بود کوماچی به چالاکی همه کارا را انجام میداد هنوز از دهن پیرزن کلمه بیرون نیومده بود که باید فلان کارو فلان کارو بکنیم میدید همه کارا را انجام داده به این ترتیب هر چهار تن خوشبخت و خوشحال بودن و شادی اونها بعد از اینکه کوماچی پسری به دنیا آورد تکمیل شد شبی از شبها کوتارو بعد از یک روز کار سخت توانفرسا فرسا در خونه استراحت میکرد که کوماچی به اون گفت تو از صبح تا شب کار میکنی اما ما چیزی نداریم اگه ما کسب و کار داشتیم تو ناچار نبودی که تمام روزو با پشت خمیده توی مزرعه و جنگل کار کنی من پارچه بافی بلدم ما میتونیم از همین کار شروع به کسب و خرید و فروش بکنیم همه چند سکه از بخچش بیرون آورد و به کوتارو داد و اونو برای خریدن وسایل پارچه بافی به شهر فرستاد. فردای اون روز کوتارو وسایل لازم رو از شهر خرید و به خونه آورد و زنش از اون خواست که وسایل پارچه بافی رو توی انبور خونه بگذاره بعد به شوهر و پدر شوهر و مادر شوهرش گفت که تا موقعی که اون داره پارچه بافی میکنه کاری به کارش نداشته باشن و به گفته خودش اضافه کرد که کارش طول میکشه که تموم بشه پس کسی مزاحم من نشه از اون موقع به بعد کوماچی هر بامداد به انبار میرفت و زودتر از غروب آفتاب به اتاقش نمی‌اومد اون روز به روز رنگ پریده تر و لاغرتر میشد. گاهی از خستگی تلو تلو میخورد. چند بار رو از اون خواست که دست از این کار خسته کننده و طبان فرسا بکشه. و بهش گفت که احتیاجی به ثروت نداریم. اما اون تنها به این بسنده می کرد که به جای پاسخ دادن سرش رو تکون بده. بعد از سه سال کوماچی، یه روزی از انبار بیرون اومد و یه تاق پارچه با خودش آورد که تا اون روز نه پیر مرد، نه پیر زن و نه کتارو مثلشو ندیده بودن پارچه به رنگهای تند و شفاف می درخشید سبوکتر از پرز اما گرمتر از سنگینترین پارچه ابریشمی بود واقعا پارچه بیمانندی بود کوماچی به دشواری روی پاهای خودش میستاد اونقدر لاغر و ناتوان شده بود که در بستر بیماری افتاد اون به صدایی ضعیف از کوتارو خواست که بخچه رو که اون سالها پیش با خودش آورده بود برداره و پیشان بیاره چون و بخچه رو آورد اون دو سکه زر از اون بیرون آورد و به شوهرش داد و بهش گفت هرچی دورتر برو اونقدر دور برو که این دو سکه زر را خرج کنی و تنها همون موقع از زودتر این پارچه رو بفروش. هر وقت اونچه رو که به تو گفتم انجام بدی پول خیلی زیادی به دست میاری. رو پارچه رو در بخچه و دو سکه زر رو در کیسه پولش گذاشت و بار سفر بست و روی به جاده گذاشت. اما بسیار ناراحت و پریشان بود چون زنش حالی داشت که انگار که تازه از بستر بیماری بلند شده کوتارو روزها و هفته ها مسافرت کرد اما نتونست حتی یکی از دو سکر خرش کنه. حالا اینکه در خرج کردن هم زیاد قناعت نمی کرد. روزی به شهر دوردستی رسید دو بازار شهر مردی از اون پرسید که تو بخچت چی داری؟ کتارو پارچه را از بخچه بیرون آورد و بهش نشون داد. بازرگان اون رو به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. دست به اون کشید و به تحسین و تعجب گفت چه پارچه بیمانندی. با اینکه خیلی سبک و لطیفه چقدرم گرمه. چه درخششی هم داره. من هیچ وقت مثل این پارچه رو ندیدم. تو این پارچه زیبا رو از کجا پیدا کردی؟ کوتارو با قرور زیاد در پاسخ اون مرد گفت اینو زنم بافته مرد بهش گفت اینو به من بفروش من هزار سکه زر به تو میدم چون کوتارو قیمتی رو که بازرگان روی پارچهش گذاش شنید فهمید که کماچی به جای پارچه گنجی بافته و به اون داده و به یاد سفارشه کماچی افتاد که پارچه رو پیش از خرش کردن دوست که زر نباید بفروشی. به همین خاطر به بازرگان گفت ببخشید این پارچه فروشی نیست. بعد به راه خودش ادامه داد. رو بعد مدتی به شهر دیگه ای رسید. به بازار اون شهر رفت و چون پارچه رو از بخچه بیرون آورد، گروهی دورش جمع شدن. بزرگترین بازرگان شهر حاضر شد در برابر اون پارچه هزار سکه زر بده. اما کوتارو که هنوز تمام سکه زر رو هم خرج نکرده بود و سکه زر دست نخورده در کیسه داشت به یاد سفارش زنش افتاد و با خودش گفت که بهتره به راه خودم ادامه بدم. کوتارو به ناحیه ای رسیده بود که چندان مسکونی نبود و مدتی دراز راه رفت تا به شهری رسید در اون شهر هم جمعیتی به تماشای پارچه اومدن و بازرگانی بسیار توانگر حاضر شد هشت هزار زر برای اون پارچه بده اما کوتارو این بارم از فروختن پارچه خودداری کرد چون هنوز یک سکی زرم دست نخورده بود در تمام اون ناحیه مردم درباره این پارچه گرانبها بحث و گفتگو میکرد و وقتی کوتاه رو به شهر دیگه ای رسید خدمتکارای بازرگان توانگری دم دروازی شهر منتظرش بودند که اونو پیش سرور آقای خودشون ببرند. وقتی بازرگان پارچه سباکتر از پرز اما گرمتر از سنگینترین ابریشم و دید که به رنگای گوناگون می درخشید گفت که این پارچه رو به هر قیمتی که بفروشه میخره. ده هزار سکیزر پیشنهاد کرد. اما کوتاه رو با اینکه ده هزار سکیزر سروتی بود که هیچ وقت خوابش هم نمیتونست ببینه در جوابش گفت که پارچه رو نمیفروشه. بازرگان توانگر اصرار کرد. گفت جوان این پارچه رو به من بفروش. اگه ده هزار سکه به نظرت کم میاد بیست هزار سکه زر میدم بیست هزار سکه زر قلب کوتارو رو به شنیدن اون چیزی نموند که از حرکت بیسته با خودش گفت که کوماچی بدون شک با این مبلغ خوشنود میشه با اینکه هنوز نتونسته بود دومین سکه تلاش رو خرج کنه پارچه رو به بازرگان فروخت با زرگان طوانگر دستور داد که بیس هزار زر رو بشمارن و به اون بدن. 20 هزار زر اونقدر سنگین بود که کوتارو به زحمت میتونست اونو با خودش ببره. کوتارو با دلی بسیار شاد و خورم برگشت سمت خونه. به دشواری حرکت میکرد چون به دوش کشیدن صندوقی که 20 هزار سکی زر در اون بود مثل زیر بغل داشتن بخچه سبوک آسون نبود بالاخره کوتارو به خونه رسید و کوماچی که توی این مدت سلامت و نیروی از دست دادش رو یافته بود به شادمانی و خوشحالی زیاد به پیش پیشبازش رفت وقتی کوماچی از اون پرسید که پارچه رو چند فروخته کوتارو با غرور تمام صندوق سکر رو نشونش داد و گفت تو این صندوق بیس هزار سکه یه تلاست. حتی یه سکم کمتر نیست. من خودم همش شمردم. پدر مادر کوتارو به شنیدن این حرف و از تعجب سر جاشون خوشکشون زد. برای اونا چنین ثروتی باور نکردنی بود. به همین خاطر از کوتارو خواستن که تمام اونو نشونشون بده. اما کوماچی که به نظر خیلی خوشحال نمی اومد گفت چرا سب نکردی تا دومی سکه طلاتم خرج بکنی؟ بعد مکسی کوتاه کرد و گفت اگه عجله نکرده بودی میتونستی برای پارچه سی هزار سکه زر بگیری با این حساب ما ده هزار سکه از دست دادیم اما بعد از لحظه دستی تکون داد و گفت با این همه ای مقدار پولم پول کمی نیست بعد به شادی و خوشحالی برگشت و برای شوهرش زیافتی ترتیب داد خونواده کوتارو خانه بزرگی برای خودش ساخت و کوتارو و بازرگان سمانگری شد کماچی هم با دلسوزی و وفاداری زیاد اونو توی کارهاش کمک میکرد پسرشون رو بزرگ میکرد و به پدرشوهر و مادر شوهرش هم میرسید اونها تو زندگیشون چیزی کما کسر نداشتن و کوتارو با اینکه به ثروت بزرگی رسیده بود خودش رو هیچ وقت گم نکرد. همون کوتارو موند که قبلا بود. نیکوکار و دل. اونها میتونستن همه عمر خودشون رو به خوشی و خورمی به سر ببرن. اما دریخ که مادر کوتارو نمیتونست اون همه سکی زر رو که توی صندوق دیده بود فراموش کنه. هر روز به عروسش میگفت تو باید یه بار دیگه همچین پارچه ببافی هیچ فکر میکنیم که هر وقت تو پارچه ببافی ما چی کارا میتونیم انجام بدیم و میتونیم چه چیزایی داشته باشیم این بار تمام پول پارچه توی صندوق میمونه چون شما همه چیز دارید بله شما میتونید این پول رو نگه دارید شاید یه روزی به دردتون بخوره. اگه تو واقعا زن خوبی هستی، اگه به فکر آینده پسرت هستی، باید یه بار دیگه هم پارچه ببافی. کماچی بیهوده میکوشید که مادرش رو قانع کنه که اونها به اندازه کافی پول دارن و بازرگانی زرگانی رو خوب پیشرفت میکنه. و دلیلی برای اینکه اونها نگران آیندهشون باشن وجود نداره. اما پیرزن این گفتگوها رو همیشه با این حرفا پایان میداد که همه اینا بهونه است، تو تنبلی، دلت نمیخواد کار کنی. هر کی جای تو بود از کاری که از اوهتش برمیومد درباره خانواده‌اش مزایقه نمیکرد. بالاخره کوماچی در برابر پیرزن مقاومت خودش رو از دست داد و گفت که دستگاه بافندگی رو توی اتاق دورافتده کار بذارن چون کتار رو اطلاع یافت که زنش میخواد پارچه به سعی کرد که اونو از این کار من کنه به یادش آورد که بافندگی چقدر اونو ناتوان و بیتاب و ضعیف کرده بود بهش گفت که با همه این وجود به قدر کافی توانگرند نیازی نداره که بخوایی تو بافتنی بکنی اما کماچی با چهره غمگیر لبخندی به روش زد و گفت سه سال زودتر تموم میشه اما من باید این بارم از شما بخوام که وقتی کار میکنم نباید کاری به کارم داشته باشید و پیش من بیایید کماچی بعد از اون روز مثل بار اول هر صبح زود به اتاقی که محل بافندگیش بود میرفت و در اون رو به روی خودش میبست. زودتر از شامگاه هم از اونجا بیرون نمی از همون روزای اول که کار بافندگی رو دوباره شروع کرده بود به خوبی دیده میشد که از این کار چقدر خسته و رنجوره. گناه های گلگونش زرد شدند و اون هر روز کمربند کیموناش را تنگ تر پیرزن با خودش میگفت اون چی کار میکنه؟ من حاضرم شرط ببندم که اون تنها از خشم که لاغر شده. زنهای دیگه هم بافندگی میکنن اما بافندگی اونا مثل بافندگی عروس من سری و پنهانی نیست. بامدادی پیرزن بعد از اون که همه افراد خانواده سرگرم کار شدند روی پنجه های پا به اتاقی که کماچی در اون بافندگی میکرد نزدیک شد در برابر اون زانو زد و آهسته لایه در رو کمی باز کرد و تونست درون اتاق رو ببینه اونجا پرنده سفید در برابر دستگاه بافندگی ایستاده بود و با منقارش پرهای بال خودش رو میکند پرهای زیادی از دو بالش کنده شده بودن و جای اونا خونین بود توی این لحظه پرنده نگاهی به طرف در انداخت و پیرزن و دید که با کنجکاوی از لایه در نگاهش میکنه. فریادی بلند کشید و پرواز کرد و از پنجره اتاق که باز بود بیرون رفت. رو هم این فریادو شنید و رنگش از ترس و وحشت پرید. سراسیمه به طرف اتاق دوید. مادرش اون چی رو که دیده بود براش تعریف کرد کوتارو رو با عجله به طرف باغچه دوید و همه درختار رو نگاه کرد روی یکی از اونها پرنده سفید دید اون با بالهای پراکندش نتونسته بود دورتر از اونجا پرواز کنه پرنده سفید روی درخت نشسته بود و از خستگی و رنجوری داشت جن میداد. کوتا با چشمای پر از اشک از درخت بالا رفت و پرنده مهتزر رو گرفت و نوازشش کرد. کلنگ یا پرنده سفید دورنا در آخرین دقایق زندگیش در گوش کوتا رو این طور زمزمه کرد. کوتا رو تو پرنده سفیدیو که یه روزی از مرگ نجاتش دادی یادت میاد. من همون پرنده‌ام. که پیش تو اومده بودم تا پاداش دلسوزی و نیکوکاری تو رو بدم. حالام دارم میمیرم. پسرم رو به تو میسپارم. اونو خوب بزرگ کن. کوتا رو با دلی پردرد پرنده سفید رو در باغچه خونش به خاک سپرد. اون هر روز با پسرش به باغچه خونش میرفت در اونجا هر دو ساعتی در کنار گور کوماچی می استادند و گریه میکردن